مولوی، قونیه، رجبه 6242 خالی خالی بود دنیا کوچه های پهن، آسمان صاف و تمام قونیه وقتی شمس تبریزی در برابرم هویدا شد و آن سوال را کرد انگار لحظه ای همه چیز و همه کس ناپدید شد فقط من و او ماندیم در این شهر پرسنده و پاسخ دهنده بگو به من: بستامی والاتر است یا حضرت رسول. راحت است این سوال را با دستت پس بزنی یا از سرباز کنی. راحت است عصبانی بشوی و سوال کننده را به سکوت واداری. دشوار آن است که بکوشی بفهمی چه چیزی پرسیده شده. و البته، پیدا کردن پاسخ زندگی انسان سیر و سفری دائمی است از گهواره به گور سیر می کنیم و در حال سفری. پیش روی من هفت مرحله جداگانه هفت پله است. دانایان به هر منزل نامی دادند. اگر نفسمان از این مراحل تک به تک نگذرد و بر این گمان باطل بماند که موجودی متفاوته است نمیتواند سفر را به پایان رساند و به حق به پیوندد. انسان در دروغ و خسران و زن است تا هفت پل را نپیماید نمیتواند به حقیقت برسد مرتبه اول نامش نفس اماره است مرحله نفس خام و بکر و نتراشیده و نخراشیده که مدام دیگران را مقصر می‌شمارد. افسوس که آدم‌های زیادی در تمام عمرشان در این مرحله می‌مانند و نمی‌توانند از آلودگی رها شوند. آدمی که جز به امور دنیوی به چیزی دیگر فکر نمی‌کند و تمع مال و مقام و قدرت دارد در این مرحله قرار دارد. اشخاصی که کشتی زندگیشان در اینجا لنگر انداخته فوراً میشناسی. همیشه دیگران را مقصر و گناهکار میشمارند و همیشه از دیگران خورده میگیرند به همان راحتی که نفس میکشند شایعه می و افترا میزنند به هیچ وجه نقصی در وجود خود نمی آبند. در مورد دیگران حکم می دهند در اقلیم شک و شبه و تکبر می زیند می شناسیشان در وجود خودت کشفشان کردی چون مادامی که انسانی و مادامی که انسان جایز الخطاست کسی در میان ما نیست که اسیر نفس اماره نشده باشد مهم این است که سریع بتوان از آن چاله بیرون آمد انسان هرگاه نقص ها و عیب ها و و اشتیاق نفسش را شناخت و قصد کرد اصلاحش کند آن زمان به سفری درونی میرود از آن به بعد چشمانش نرو به بیرون بلکه رو به درون می چرخد. به این ترتیب، گام به گام به منزل بعدی نزدیک می شود. این منزل از منظری درست برخلاف منزل پیشین است. در اینجا فرد به جای آن که مدام دیگران را مقصر بداند همیشه تقصیر را در وجود خودش میابد در هر واقعی خودش را میکاود و مقصر میداند این پله پله عالم زیبا و منزشت است در این مرحله نفس به نفس لوامه بدل میشود یعنی نفس سرزنش کننده یا مقصر داننده در مرحله سوم شخص پخته تر می شود و به نفس ملهمه می رسد. در این نقطه از آنجا که نفس انسان الهام گیرنده است، فرد از هرچه و هرکس که در دنیا می بیند، الهام می گیرد. از دور و اطرافش به تدریج حس می کند حالتی که به آن تسلیم بودن می گویند چگونه آزادی است. اگر قسمتش باشد به شهر علم قدم میگذارد. این مقام با آنکه گهگاه، قبض یعنی تنگی و فشردگی پدید میآورد از آنجا که اکثر اوقات، بست یعنی گشایش و گسترش به همراه دارد چندان زیباست که باعث شادمانی دل شود. اما جاذبهش در این حال، بزرگترین خطر است. چون بیشتر کسانی که به این مرحله می رسند نمیخواهند از آن خارج شوند. گمان میکنند به پایان راه رسیدند حالان که راه طولانی تر و دشوارتر است. اینجا آهنگین و رنگین است و خیلیها نمی توانند اراده و بصیرت و جسارت پیش در رفتن را در خود بیابند. به همین سبب است که سومین منزل با آنکه مانند باغ بهشت لطیف است برای آنها که هدفی والاتر دارند نوعی دام محسوب می شود. شخصی که موفق شود از این مرحله فراتر برود شهر علم را پس پشت میگذارد و به مقام نفس مطمئنه میرسند. دیگر نفس مثل سابق نیست. به کل تغییر کرده است. از این رو به آن نفس راضیه و خشنود هم میگویند. شخص دیگر مالک شعوری بس والاتر است. چشمش سیر و دلش باز شده. دیگر درد نقدینه و شهرت و مال و مقام ندارد با دیگران به خوبی رفتار می کند و فقط هنگام نماز روی سجاده نیست که آرامش دارد همیشه همینطور است در نمازی دائمی است. قلبی نمی شکند. حق بنده ای را نمی خورد. بر کسی خورده نمیگیرد و عیوب دیگران را میپوشاند مال و ملک را به خدای مال کل الملک تسلیم می کنند فراتر از اینجا شهر توحید است به سه مرتبه پایانی مراتب کمال میگویند حقیقتا اندکند انسانهایی که میتوانند به آنجا برسند و خدا به هر حالی که افکندشان خوشحال، آرام و سپاس گذارند. از آنجا که در نخستین مرحله از سه مرحله پایانی به نفس راضیه رسیدهاند به امور دنیاوی اهمیت نمی دهند و فریب دنیا را نمی خورند. مقام بعدی نفس مرزیه است. چون خدا از این نفس رضایت دارد به آن نفس پسندیده میگوید شخصی که به اینجا میرسد چراغ راه دیگران می شود نورش را به راه هر که بخواهد میتاباند مانند قطبی حقیقی و چراقی خاموش ناشدنی روشنی میبخشد گاه حتی می تواند شفا بدهد در رفتارهایش از افراط و تفرید میپرهیزد در هیچ موضوعی قلف نمی کند افتاده ها را به هم میرساند دشمنان را آشتی میدهد. دهد مهیت ها را تلطیف می کند به نسیمی ملایم می ماند که در سختترین ترین ها میوزد فرد در هفتمین و آخرین مقام به نفس کامله میرسد. در اینجا زن نفسی متفاوت به کل از میان میرود. اما چون کسی نیست که این مقام را بشناسد و اگر هم باشد اش سخنی نگفته، آگاهیمان در باب آن بسیار محدود است. شمردن منازل راه حق آسان است، تی کردنش دشوار است. در این راه نه تنها موانع زیاد وجود دارد، پیش رفتن در خطی مستقیم غیر ممکن است. راهی که از نخستین منزل به منزل پایانی می رسد، مستقیم نیست، پیش در پیچ است. به علاوه، زمانتی وجود ندارد شخصی که به مقام های والا رسیده همانجا ماندگار شود. حتی کسانی هستند که گمان می کردند خام بودند و پخته شدند. اما از آن بالا به پایین سقوط کردند. وضع که چنین باشد شمار انسانهایی که بتوانند به منزل نهایی برسند بسیار اندک خواهد بود به همین دلیل هنگامی که شمس سؤالش را در باب حضرت محمد و با یزید بستانمی می‌پرسید نمی‌خواست صرفاً مقایسه‌ای کتابی انجام بدهم در عین حال داشت در مورد من شخص من سؤالی مطرح می‌کرد یعنی حاضری برای فنا شدن در حق نفست را به تمامی فنا کنی، داشت مرا به تفکر دعوت می کرد. سؤالی دیگر زیر نخستین سؤالش پنهان بود. می پرسید، تو ای وایز بزرگ، تو در کدام مقام از مقامات هفتگانی؟ از جایگاهت رازی؟ بگو ظرف تو چه اندازه است دلت تا به آن دارد تا پایان راه برود